روز هر نفر با صبحش آغاز میشه. اینکه صبح رو چه میکنین در تمام روزتون تأثیر میذاره. عادتهای هر صبح افراد موفق هم با یکدیگه متفاوته. اما این چند ایده میتونن در داشتن صبحی بهتر کمکتون کنن. یک صبح زود از خواب بیدار میشن. میدونید ارنست تایمینگوی تیم کوک یا جک دورسی در چه چیزی با هم شباهت دارن؟ همگی صبح ها زود از خواب بیدار میشن. منظورمون هم از زود بین چهار تا پنج نیمه در حالی که افراد موفق بیدارن رقبای نه موفقشان در رویاهایشان به دنبال قصه های تخیلی میگردن دو. کارهای روزشون رو دوره میکنن بیشتر افراد موفق قبل از اینکه روزشون رو شروع کنند برنامهریزی یا اهدافشون رو بررسی میکنن اونها دید واضحی از کارشون دارن و این موضوع به اونها اجازه میده تا کارشون رو به خوبی اجرا کنند. برای مثال این جمله از استیو جابز رو بخونید. در 33 سال گذشته هر روز صبح در آینه به خودم نگاه کرده و از خودم پرسیدم اگر امروز آخرین روز زندگیم بود آیا همون کاری رو می کردم که امروزم میخوام بکنم؟ اگر چند روز پشت سر هم جواب نبود میدونم که باید چیزی چیزیو تغییر بدم. 3. ورزش می کنم. میتونید مدیرعامل اپل رو هر روز پنج صبح در ورزشگاهی پیدا کنید. جک درسی امروز 6 مایل می دوه. مدیرامل یونیلیبر هم هر روز روی یه ترمیل میدوه. تمام افراد موفق میدونن که بدنی سالم خالی از بیماری و استرس برای انجام سختترین و چالش برانگیزترین کارهای دنیا نیاز دارن. علم هم میگه که ورزش کردن اندروفین ها رو ترشم میکنه که استرس رو کم میکنن. به طور کلی ورزش انرژی میده و سالم نگهتون میداره. چهار. مدیتیشن میکنن. افراد معروفی مثل پاول مک کارتنی هیو جکمن اوپرا وینفری یا جک دورسی روزانه مدیتشن می‌کنند تا ذهنی خالی و آرام داشته باشند و افکار مزاحم رو دور کنند اونها با این کار استرس خودشون رو کم و وضعیت روانی سالمتری پیدا می‌کنند. 5. صبحانه سالم میخورند چه در ماشین چه در محل کار یا چه در خانه تمام افراد موفق صبحانه سالمی میخورند بهتره صبحانه را با کرب های پیچیده پر کنید که به آرامی میشکنند و در طول روز انرژی تولید میکنند شش، کارهاشون رو نویسند. برخی به دفترچههایی که افراد موفق دارن دفتر ایده میگن برخی هم اونها رو دفترچه خاطرات میخونند با این حال مارک تواین جورج لوکاس چارلز داروین بتوون یا هر فرد موفق دیگه ای که فکرشو بکنید یک دفترچه برای نوشتن کارهاش داشته اونها توی این دفترچه از ایده ها افکار، برنامه ها اهداف یا هر چیز دیگه ای می مینوشتند 7 کارهای سخت را با تمرکز بالای انجام میدن افراد موفق میدونند که تمرکز انرژی و اراده منابع بسیار مهمی از پول هستند انجام کارها به بهترین نف هم نیازمند اینهاست با تمرین روزانه می توان به سطحی رسید تا منابع خود را به خوبی در کارهای سخت خرج کرد پس از برنامه‌ریزی و بررسی هدف‌ها افراد موفق سخت‌ترین و در عین حال کاری که بیشترین بازده رو براشون داره اول صبح انجام میدن. هشت از رقباشون بیشتر میدونن. افراد موفق از تمام اطرافیانشون بیشتر میدونن. اونها عاشق یاد گرفتنن. اونها بسیار کتاب میخوانن. در حالی که رقبای افراد موفق به دنبال سرگرمی‌های مختلف هستند، اونها روزنامه و کتاب میخوانن. یا به کتاب‌های صوتی گوش می‌دن